ببین دیازم آمده خورنده آقایانی که برای ریاست جمهوری ثبت نام کردید و تایید شدید و منتظر رأی ملت ایران از دید ما همه ملت ایران تک تک رأی میدیم شرکت میکنیم به کوری چشم ملت ایران به کوری چشم ملت ایران ملت ایران ملت ایران minus 20 seconds. Onu سلام ساعت 5 عصر جمعه به وقت تهران این پادکست در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بل ملی حضور بشر در ایران امروز ده خرداد 92 ده روز مانده به انتخابات مهمان این هفته مازیار بهاری رهبر ایران هنوز آیت الله سید علی خامنه ای و من کامبیز حسنی هستم ای آهاد ملت جماعت ایرانیا یک داستانی شده که آقا بیا و ببین جماعت عصبانی مردم نامید یک گروهی با لبخند موزیانه <ksamGM> یک گروه افسرده گروه خوشحال و عیدی هم به زمین و زمان بد و بیرا میگن این وضعیت حال حاضر ماست و طبیعی هم هست ظاهرا چون به هر کی میگیم آقا جریان چرا اینجوریه میگیم طبیعی واکنش طبیعی مردمه در مقابل شرایطی که الان ایجاد شده من خودم خداکیلی در دو هفته گذشته تجربه خیلی جالبی داشتم تعداد زیادی از آدم هایی که میخوان رای بده شروع کردن بد و بیرا که تو داری انتخابات رو تحریم میکنی و همون اندازه آدمی که میگن تو داری انتخابات رو تحریم میکنی، شروع کردن بد و بیرا که تو داری مردم تشویق میکنه رای بدن. بهمانم که اوناقه عادت دارم که از همه جناها هم ت تخت تخت فش بخورم با پوستی کلافت، نظارگر این روزهای ما ایرانیان هستم که روزهای خوشی هم نیست چرا که نسل کشی امید، بر ایران زمین سیطرف کنده و دوره دوره خوبی برای آزادی خواهان ایرانی نیست موسیقی در این دنیای زیبای زیبای زیبای زیبای زیبا هفته گذشته اتفاق جالبی هم افتاد اول بل از اینکه حسن روحانی نامزده یه ذره اصلاح طلب به الان دیگه زده انقلاب از دیده اصول گرایانه جمهوری اسلامی رفت تلویزیون مجری رئیس مجری رئیس رئیس مجری و تو من خلاصه همه رو پودر کرد پوف فرستاد هوا این یارو مجری لجاوره که میشینه مثل عروسک خیمه بازی جلوی کاندیدا نشست جلوی روحانی گفت قراردادهای سعداباد بروکسل و پاریس عملا همه چیز متوقف شد حالا سوایی از این قضیه شما چقدر دولت تدبیر و امید انتقاد پذیره یعنی اگر مخالفین پس یه حرفی که زدین که میدونید که دروغه خودتون که میدونید دروغه ها خب دروغ گفت یارو دروغ گفت و مچشو گرفت روحانی حالا, حالا چه دروغی گفته بزر بقیش بیمی چه دروغی گفته یارو ببینید در سعدآباد یا مذاکرات تهران اصلا قراردادی نبود این بی بیسواده از شما که عمدالله تو این کار واردید حالا ممکنه تو گوشی به شما بگن اونی که گوشی به شما میگه بلد نیست خود شما بلدی تصحیح کن من من خجالت کشیدم واقعا جای اون آدم من خودم سالها موجودی تلویزیون بودم مصاحبه که الان مصاحبه میکنم با مردم یکی بلند شما هم بگه که مثلا تو اونی که تو گوشیت میگه ردادم دردام اینا این واقعا من جای اون آقای بودم بلن میشدم میرفتم اصلا من نمیدنم یاروش کشوری تو دو دوره برمیگرد تلویزیون این, این دیگه عالی بود بقیه شد ما فقط اون دهتا سانتریفیوژی که تو نتنز کار میکرد اونم گازدهیش کرد یوسف هم تعطیل شد اه عجب شما کجا بودی اونوار؟ <تصفيق> شما کجا بودی؟ یعنی برو با ولیت بیا کوچولو. تو کوچولو سر از یعنی خی... تغییر کرد یارو رو خیلی بد یه ذرت خشونت بود تو این تغییرش برای کسی که دایه اصلاح طلبی داره مثلا اعتدال و تعامل و از این حرف ها این نظره خشونتش زیاد بود ولی بازم بهش زد بهش گفت بی سواد برو یاد بگیر بعد بیا حرف بزنی ما تکمیل کردیم یوسف میدونید که افتتاش شد آیا یاو خوب تاریخ رو بخونید آیا یاو من خیلی متاسفم که شما تاریخ رو نخوندی اومدین شص سی با روحانی حرف میزنی تازه این صدا و سیما هم بد اخلاقی جا میندازه اونم تو گوشی اینجوری بگم که یه ادعی همون بد اخلاقی هست که قبلا گفتم. ها. این صدا و سیمای شما از بس اون بدخلاقی ها رو گفته شما هم تو زهنتون جا افتاده اونی هم که تو گوشی به شما میگه تو زهنتون جا افتاده. اونی که تو گوشی میگه چیز اصلیه یعنی اون هدف اصلی آقای روحانی است که همش بمونی که این طرف هم که داره باش مصاح میکنه دید که به بی دهشت دهدنای معکوم شده گفت من آقا کتاب تو خوندم با اینقدر منو تغییر نکن من خوندم کتاب تو من کتاب شما رو از اول تا آخر دو مرتبه خواری باری لایه بار سومم پس بخون لطفا این لطفاش من کشت یعنی آخر تمدن بود که لطفا برو بی سواددی رو یه کاری باش بکن. آخرش همین یارکتش مصاحبه کردید این روحانی به ایچ سراتی مستقیم نیست قطش کرد تا بفهمه آنتن دست کیه روزی که من پرونده رو تحمیل گرفتم 150 داشتیم من سفاظ گذارند چون وقتمون تموم شد شما بینندگان عزیز میتونید متن مکتوب و تصویری برنامه امشب رو خب اینو که قطع کردند اما این هفته گذشت همین کاندیده ها رفتن آقا بدون حرف و از میان اینها آقای ولایتی گفت آقا صد روزه مشکلات مملکت رو حل میکنه صد روزه با با بام. این که بنده ارز کردم که برای علاج کوتاه مدت مسائل حد اقتصادی کشور ما یه فرصت بنده یه فرصت صد روزه میخوام و در این فرصت صد روزه میشود مسائل حد رو علاج کرد جلیلی گفت با چوب بستنی سازی مشکلات بیکاری جوانان رو حل میکنه Mesela bir başka iş mi etkiliyim? Mesela ben nihayette der yıl hayı. Mesela bir kışverim mesela Alman, ki mesela beyan mı konur ki mesela İran'ı mı xam tariim koyun falan koyun. Hemin salla nevat, ne oluyor? Madenzedi ki 69 milyon dolar, azin kışver çub bastani var etkede oldu. Koşmangı çub bastaniyi turustu hayı mı hamı mıton toplit koyun. Ben taze ham azar şarret mi koyun hamu ben mi gel alımın tariim mi koyun amniyiz mı pul biyor mesela. خب این رو ما میشه تبدیل به فرصت کنیم تاقام با همین 39 میلیون دلار شما تو چند روز ما برای تولید چوب بستنی میتونه اشتغالی ایجاد بشنیم رضایی گفه سیاستش اینه که قیچی کن بره استراتژی قیچی من تو استراتژی تعریف کردم به نام قیچی یعنی ما میخوایم با این قیچی انشالله این بومبست رو ببریم قالی باف هم گفت من همون رایشمور مشد هم رایش و خارج مارج اینا مال خدا آغاست به ما ربطی نداره مگر قانون اجازه میده که رئیس دولت برای سیاست خارجی تصمیم بگیره سیاست خارجی بر اساس قانون یک تصمیم نیست مال حاکمیت بله رئیس دولت یکی از عناصری است که در سیاست خارجی نقش اساسی و تاثیرگذار اها روحانی درزم گفت کلید دستشه کلید چه ارز کنم؟ شاکلید دستشه بقیه بل مطلن من میخوام بگم که همه چیز با تدبیر و امید و با کلید تدبیر حل خواهد شد بدونید چما هستهی هم حل خواهد شد تحریم هم برداشته خواهد شد رونق اقتصادی هم ایجاد خواهد بقیه کاندام که جونم براتون ارز کنه قرضی و حدات که خب نخودی هن. هم که آقا ما هر چی آروم حرف میزد چیزی نشدینی واقعا یعنی خیلی تلاش کردیم چی میگه یعنی می نفهمید چی میگه اما وقتی که این حرفای آقا عارف گوش این این دل اون برای آقای احمدی نژاد تنگ شد واقعا و اینکه ترک می‌کنیم آقا احمدیش به اون های قرایه‌ای که میکرد با اون حرف‌های شیرینی که میزد دلمون تنگ شده رفتیم گشتیم ببینیم آقا یک دو هفته اقای احمدی نجات چی گفته دیدم اقا پا بیا ببین اگه شما هم دلتون برای آقای احمدی نجات تنگ شده باید عرض کنم که ایشون در نطقی بلند بالا و بلند تن از همیشه گفت که مشاعی رو رد کردید کردید ولی بهار سلام بر بهار انسان ها سلام بر فرمی دوران ها علیکم سلام علیک سلام آقای احمدی نجاد می‌ریم که داشته باشیم ماراتون بهار آقای احمدی نجاد رو در یک سخنرانی نیم ساعته بشمار یک تجلی کامل بهار بشمار دو و همه بهواز بشمار سه و چهار فصل بهار و ماه آخر بهواز بشمار پنج شش و اینکه بهار بهار بحار بهار در بهار در بحار است آفارین آقای احمدی نجاد بهار رو بیا بهار بشمار چندومه بودیم هفت و هشت شاید برو آفارین آفارین صد آفرین در یک کلام آشقان و فریاد کنندگان بهار بهار دست داره بهار کف داره برو معلومه که اگر بخواهیم از بهار صحبت کنیم باید به درازای بشمار ده از بهار دو سی کلمه 11 درباره بهار فرمودند حساب دستمند رفته ولی بهار برف کردن بهار است بازم بهار است بهار بهار است درباره بهار فرمودند گل اومد بهار اومد بهار اومد رسیدن به بهار است بهار بازم میاد عشق بیاره من نرنده دل برای برپا کردن بهار است اومد بهار و بوی یار و حس یاد و نام بهار بهارون خوشاسته با رن رن رن. اگر عشق به حال عشق به بهار امید به برپایی بهار امید به ملاقات با بهار وجود نداشته باشد زندگی بی‌معناست بهار دلکش اگر زندگی بهاری به مفهوم بهاری تا بهاره دلشی ای آن بهار و خود بهار ما خسته شدیم از اینکه بهار بهار کرد شمردید اگه شما شمردیم که این چند تا بهار گفت بیایم به ما بگین بیشتر از اینا گفت ما دیگه, دیگه خسته شدیم نمیذاریم دیگه از حوصله شما خارجه ولی آقای احمدی نجات بهار رو اینجوری تموم کرد که بهاری باشی بهاری باشی بهاری باشی آخه رفته دیگه دلمون تنگ میشه برد. محمود خان ولی بیخیال با, با, با این در این دنیای زیبای زیبای زیبای زیبا که زیبا زیبا زیبا زیبا زیبا تو و آقا و رفقا و برای ما درست کردین امروز که گذشت کرگدا و گرفر زین زین به پوش یا پوش به آقا در صفای <متصف> نیت کو. در این دنیای زیبای زیبای زیبای زیبا،, زیبا امروز که گذشت بگذرد فردا و اما اهم مخبار هفته این که عشقان زهابیان فعال دانشی و دانشی محروم از تحصیل روز دوشنبه شیش خورداد برای سپری کردن مدت 8 ماه زندان باقی مانده از سال 90 خود به زندان رفت. اما نه اینکه خودش بره، بلکه معمولین امنیتی ریختن تو خونش خواب بود طرف با لباس خواب بلندش کردن، بردن زندان بدون اینکه بذارن مثل آدم لباس بپوشه بره زندان. هرچقدرم پدر مادرش گفتن آقا بدون لباس بپوشه ببرش. همینجوری با پیژامه و اینا زیر پوش بردنش پا برنده. دقیق از یه ذره حرمت برای شخصیت انسان در اون جامعه آقا. چهارشنبه هشت خرداد پنج کارشناس حقوق بشر سازمان ملل گفتند که ایران به صورت جدی قوانین بین رو از طریق تبعیض مداوم خود نسبت به کاندیداهای ریاست جمهوری زن و سرکوب ادامدار مطبوعات نقض میکنه. جمعه ده خرداد منصور برجی یکی از مدافعان حقوق مسیحیان ایران به کمپین گفت که قدیمی ترین کلیسای فارسی زبان پرتستان با عنوان جماعت ربانی مرکز در تهران زیر فشار معموران اطلاعات روز پنج خورده تعطیل شده و یکی از کشیش های این کلیسا رو بردن زندان ببین مسیحی کشی داریم تو من الان مسیحی بگیریم ببریم اوین با مسیحی خوب بودیم که شما چی شد؟ و اما خبر دیگه خبر مهم دیگه اینی که کاندیداهای های ریاست جمهوری در هفته گذشته اما تلویزیون ملی میهنی هر کدومشون از یک ساعت حرف زدن برای ما اما هیچ کدومشون در خصوص زندانیان سیاسی و افرادی که حقوقشون در انتخابات گذشته زایه شد حرف نزد یعنی اصلا انگار نه انگار که ها چهار سال پیش انتخابات شلوغ شلوخ شد کشته شدن ملت پدرشون در انگار نه این که این اتفاق افتاده و اون آدم ها جزء مردم ایرانند و اینایی که میخوان رئیس جمهور بشن میخوان رئیس جمهور اون آدمان بشن انگار نه انگار انگار نه انگار که هزاران نفری که زندگیشون بعد از انتخابات زیر رو شد ایرانی اصلاً هستن اصلاً وجود ندارن و این آدم قرار نیست رئیس جمهور اونا باشن اینا رئیس جمهور یه نفر دیگر یعنی یه آقای هست که میخواد بگه رئیس جمهور باش و ایشون رئیس جمهور اوناست دقیقم کرده باشین وقتی میان تو تلویزیون همش دارم پیام میدن به اون آقا نه به مردم به اون آقا دارم پیام میدن که آقا ما مخلصیم چاکریم حمایت کن ما رئیس جمهور بشیم ما داریم و خط قرمزام رد نمیکنیم و اما دولت آمریکا اعلام کرد که در نظر دارد تحریم فروش تلفن همراه و لوازم و نرم افزارهای کامپیوتری رو برداره. خدا رو شکر یه تحریم رو به برداشتن یعنی از این که تحریمی که به مردم مربوط می‌شد برداشتن تا یه جورایی مثلا محدودیت‌هایی که حکومت ایران برای دسترسی مردم به اطلاعات از طریق اینترنت یا دیگر وسایل ارتباط جمعی ایجاد می‌کنه رو تشدید نکنه خبر خوبیه دمشون گرم کار مثبت کردن برای مردم ایران و ما یه خبر خوب دیگه اینه که عبدالکریم لاهیجی وکیل حقوق بشر که چند هفته پیش مهمان این برنامه بود در سن 55 توسط اعضای فدراسیون جوامع حقوق بشر در کنفرانس سالانه این فدراسیون به ریاست این سازمان انتخاب شد این فدراسیون قدیمی ترین سازمان حقوق بشری جهان محسوب میشه اینم یه افتخار برای یک ایرانی در جای خیلی مهم آها عباس کیارستمی یک کارگردان و آدم محترم قابل احترام باعث افتخار و اینها به نشریه هالیوود رپورتر امریکا گفت که اوضاع ایران هیچ وقت به این تاریکی نبوده است ایشون گفت که باید معجزهی رخ بدهد که مردم ایران نجات پیدا کن رسیدیم به خوب زشت بلد. این هفته شما شنوندگان برنامه که دسترسی به فیسبوک داشتید اومدید و رأی دادید آقای محمد رضا عارف کاندیدای ریاست جمهوری رو به عنوان شخصت خوب هفته انتخاب کردید علتشم این بود که ایشون در برنامه خبری تلویزیون و جایی که انگار اسم بردن از رئیس جمهورهای سابق ایران گناه کبیر است بارها از رئیس جمهور قبلی اسم آورد و گفت که اگه رئیس جمهور بشه نمیذاره به مقام های سابق نظام از جمله میر حسین موسوی توهین بشه اگرچه آقای عارف نگفت که دو سال و نیم حسر خانگی غیرقانونی موسعی به همسرش رحنورد و کروبی هزار مرتبه از توحین هم گذشته اما همین اسم بردن از آقای موسوی ظاهرا کافی بوده برای شما شنوندگان این برنامه که اونو شخصیت خوب هفته انتخاب بکنید اینه وضعیتی که توش به سر میبریم ملت که حتی اسم آوردن از یک آدم تو صدا و سیما میکنه ملت رو و به یادشون میاره که یه روزی روزگاری میمم مملکت یه آدمی بود که وایستاد ببینه رأی مردم کجا رفت یه زمانی مردم بین بد و بدتر رفتند بهش رأی دادند تا وضعیت بهتر بشه امروز شنیدن اسمش در تلویزیون و فقط مطرح شدن اسمش توسط عارف ایشون رو تبدیل کرد به شخصیت خوب هفته این برنامه دیگه من همینجا تمومش کنم بهتره چون امکان داره حرفه بعد بزنم به مذاقه سری خوش ناید شخصیت خوب هفته محمد رضا عارف دریق از ذره کاریزما شخصت بد این هفته سعید مرتضوی است آقای مرتضوی که بعد از دادگاه کشته شدگان بازشگاه کهریزک با پررویی هرچه تمامتر گفت که از اقداماتی که انجام شده پشیمان نیستم مرتضوی همچنین با افتخار به کارهای خودش و بدون اینکه یادی بکنند سه نفری که در این کهریزک جان خودشون را از دست دادند و افراد دیگری که تو این بازشگاه کتک خوردند و مورد اذیت و آزار جسمی و جنسی قرار گرفتند برای ما معنی تکلیف رو هم مشخص کرده گفت پشیما نیست ما به تکلیف عمل کردم تکلیف عمل کردم تکلیف داشتنشون عمل کردن بهش به تکلیفشون فرمودن که پشیما نیست و به تکلیف عمل کرده کسی که در اقتشاش علیه نظام و حکومت اقدام می کند را در هتل پنج ستاره نمی برند بلکه باید با او آنطوری برخورد شود که از کرده خود پشیمان شود قرارم منظورش از هتل پنج ستاره اوین بود منظورش این بود که اوین نمیبرنش میارنش تو کهریزک اونجا ما حسابشو برسیم مرتضوی شخصیت بد این هفته است و من یه پیام خصوصی دارم براش از همینجا و اینکه آقای مرتضوی محترم بدان و آگاه باش که هیچ دادگاهی معتبرتر از دادگاه وجدان عمومی و قضاوت مردم نیست حالا بزار 100 دفعه طبرعت کنن رفسنجانیش صلاحیتش رد شد صلاحیت دادگاه توکه قربونت شخصیت زشت این هفته رو با صدای بلند همه عوامل درگیر در سوریه اعلام می‌کنیم چپ، راست، بالا، پایین قرمز آبی، نمیدونم، همه، همه، همه اوامل درگیر در سوریه آقای اوامل درگیر در سوریه، آره روزگار مردم سوریه رو سیاه کردین، بسه نگه این همه کشته، ده ها هزار نفر کشته، اون یکی نمیدونم، دستشو کرد قلب یارو رو در آورد فلان کرد و اینو ازم تاتا بار... تاتا تاتا خونو ازم بار... با باب باب باب با با بام رینگ بوکس شده این کشور برای ایران و روسیه و عربستان و قطر و ازبله و لبنان و شرق و غرب و بالا و پایین و فلان و کاپیتالیست و کمونیست و همه عم... همه عم... همه عم... عم... نمیدونم یک سری کشورم آشکار و یک سری کشور پنهان کارشون اینه که رفتن خون مردم این کشور رو یکی یکی دارن میکنن تو شیشه شخصیت زشت این هفته آدم‌ها و کشورها گروه‌هایی هستند که جون مردم براشون پشیزی ارزش نداره و به جای اینکه بشینن سر میز آقا مسئله سوریه رو حل کنن خون با زور و اصلا و یارگیری و نابودی طرف مقابل جای پای خودشون رو در این کشور محکم کنن این وسط مردم سوریه دارن جون میدن خون میدن عذاب میکشن تاریخ داره روزهای سیاهی رو برای سوریه و همه کشورهای درگیر در این نزاع خونین ثبت میکنه آخر دعوا کی زرر میکنه؟ مردم سوریه همه خب مهمان این هفته شما مازیار بهاری است آقای بهاری ژورنالیست و مستند ساز است در ایران زندان رفت و اعتراف اجباری کرد و وقتی از ایران آمد بیرون پدرش را درآورد این هم اولین سوال شما از مازیار بهاری آقای بهاری رئیس جمهور میشه به نظر من آقای جلیلی احتمال استیاده که رئیس جمهور بشن بر این که ایشون پشتیبانی رهبری و بسیج رو دارد و به نظر میرسه که در این انتخابات آتی رهبری دیگه مثل دفعی پیش با کسی تعارف نداره و مشخص میکنه که کاندید مورد نظرش کی هستش و بسیج سپاه و عوامل وزارت کشور و شورای نگهبان هم هم همون کاندید پشتیبانی میکنن. البته این امکان هم هستش که در دقیقه آخر رعی رهبری برگرده از آقای جلیلی و به احتمال زیاد طرف آقای دلایتی بره اگر یعنی از طرف آقای جلیلی برگرده میره طرف آقای دلایتی ولی من فکر کنم که جلیلی رعیشون خود بشه شما آیه به چند سال پیش از آیه غالیباف تقریبا تعریف کرده بودید که آدم احل سازندگی است و چهره از ازشون ارائه کردید آیا هنوز هم بعد از اینکه ایشون یک ای نواری ازشون منتشر شد که گفت خودش عملا افتخار میکنه که حق تیر گرفته برای اینکه دانشجو دانشجا رو درخیابان بزنه و یا چوب میزده مترزان رو درخیابان خودش آیا نظرتون نسبت به غالیبا الان همونه هست یا عوض شده یا چه شده است؟ ببینید خوب نظر من صد در از درباره قالی باف عوض شده اما آدم ها در خلق زندگی نمی کنن. ببینید ما قالی باف نمیتونیم با نلتون ماندلا یا باسلا پاول بیایم مقایسه بکنیم قالی باف شما باید بای بیایید با سردار نقدی با افراد دیگهی که در سپاه و نیروی انتظامی هستن مقایسه بکنید. چیزی که من چند سال پیش که قدوز سال پیشه که این مقاله رو نوشتم که حالا طرف داره مجایدین اینو دوباره زنده کرده مقاله خیلی کوتاه بود آلیباف رو در حقیقت کارنامه شد در شهرداری با احمد نجات مقایسه کرده بودم و در یک جمله هم اشاره کرده بودم که در سال 1381 که به مناسبت 18 یک سری دزاورات انجام شده بود آقای غالیباف تونست که تظاهرات و مسالوت آمیز ختمش بده بعد حالا طرفتار مجایدین اومدن گفتن که به حالی تملق میکفته از غالیباف پولی رفته اینا اولا که این مقاله مال هفهنی سال تیشه که غالیباف قرار بودش که حالا کاندید بشه که آقای خامنه اون سال سال 88 نذاشتن که آقای قالیباف کاندید بشن و یعنی من هیچ طرفداری از قالیباف نمیکنم من هنوزم میگم که در نیروی انتظامی قالیباف از خیلی ها بهتره برای. و به نظرم ما نباید حکم صادر کنیم در مورد افراد که نه قالیباف آدمخشه چون مثلا یک بار این کاری کرده دو بار این کار کرده باید هز اعدام بشه نه شما باید مقایسه بکنید با افراد دیگه که هستن شمای بحاری از نظر فکری خودتون رو به کدوم گروه یا حزب سیاسی نزدیک میبینید؟ اصلا دارید تمشین نزدیکی به حزبی یا گروهی؟ حالا من خوشبخت در این چند وقت اخیر از تمام گروه های سیاسی فرش خوردم بنابراین من به این افتخار میکنم که من هم از طرف سلطنت مورد انتقاد قرار گرفتم مجاید که نمیدونم چرا من دشمن خودشون فرض میکنم با وجود که من فقط ازشون انتقاد کردم جمهوری اسلامی که خوب جای خودشو داره اونا میگن که من جاسوس رسمی CIA و MI6 هستم بنابراین من خودمو طرفدار هیچ گروهی نمیدونم و نزدیک هیچ گروه هم نیستم نه. من خودم آدم متقلی هستم و هر وقت که ببینم هر کس که حرف حقی میزنه من طرف اونو می گیرم اما به نظر من در دنیای سیاست و در کشورداری باید آدم واقعیت ها رو نگاه کنه باید موقعیت زمانی، تاریخی و جغرافیایی رو بسنجه و بدونیم که ما در ایران زندگی می کنیم که از یک طرف همسایمون افغانستانه از یک طرف دیگه همسایمون عراقه ما توی سوئیس زندگی نمی که همسایمون ایتالیا و آلمان باشه بنابراین باید به اندازه خودمون از خودمون توقف داشته باشیم و به اندازه اون چیزی که هستیم و در حال حاضر هستیم بیام قدرت همونو بسنجیم و قابلت همونو بسنجیم آیا باری شما نظرتون راجب آقای هاشمی به حصف ایشون چیست فکر میکنید که با حذف آقای هاشمی آیا اصلا و بسیاری کانده های دیگر آیا اصلا فرقی میکنه که مردم شرکت کنند یا نه در انتخابات اون هم با توجه به اتفاقاتی که در سال 8-8 افتاد الان بله در دست فهم میکنه که مردم شرکت کنند یا نکنند ببینید به هر حال حکومت سعی داره که با میدون دادن به افرادی مثل روحانی یا قبل از انتخابات یا حتی ا که در حیات حضورشون در انتخابات مثل جوک میمونه مثل رضایی یا خرزی بیاد یه مقدار بازارگردی میکنه بنابراین حکومت احتیاج داره که مردم به قول خودشون در صحنه حاضر باشن اگر حکومت ایران حکومتی دیکتاتوری بود مثل حکومت عراق یا حکومت کره شمالی هیچ وقت این رو نمیمد بکنه که بیاد بازارگرمی بکنه برای انتخابات بنابراین حکومت همیشه سر داره که اون بچه مردمیش رو بر تر بکنه و به نظرم اگر مردم دوباره میگم با تشخیص افرادی که صلاحیت شدن این هشت نفری که هستن بیان به قول خودشون اصلحو در این میان انتخاب بکنه که به نظر من تو این هشت نفر در حال حاضر روحانی اصلحترینشون هستش میتونن یک پیامی رو به حکومت بدن و ضمن این مسئله ما باید توجه داشته باشیم که قبل از انتخاباتی فضای رسانهی تقریبا باز در ایران درست میشه که این فضا در چهار سال آینده امکان تجدیدش نیست و ما باید بیرم از این فضا استفاده بکنیم این که ما بیرم تحریم بکنیم و بگیم که نه نباید شرکت بکنیم خب این هر چیه ولی نتیجه نمیده مردم به دلایل مختلف در انتخابات شرکت میکنن حالا بعضی از،, از تحت شرکت میکنن بعضی عادت دارن شرکت میکنن و بعضی هم فکر میکنن که واقعا تأثیر داره رعیشون بنابراین به نظر من باید با توجه حتی به حصف هاشمی هم در انتخابات شرکت کرد خب حرف آخر این هفته ما در مورد حرف های خوبیه که اینقدر بهش عمل نمیشه که اصلا وقتی میشنویم دیگه خوبیشم حسن میکنیم انگار اصلا گفتنش یا نگفتنش هیچ فرقی نداره یا اینکه که اصلا خوب بودنشم و اهمیتشم دیگه درک نمی کنیم باقی. این هفته آیا ایت الله خامنه ای یه حرف درستی زد یه حرف خوبی زد ایشون که سمتشون در قانون اساسی رهبر یا ولی فقی یا هرچی هست و طبق قانون هم اختیارات و داره ولی در عمل یه چیزی تو این مملکت نیست که دستشو توش نکنه و یه تصمیمی نیست که نخواد توش تخالت کنه یه حرفی زد که اگه ایشون نمی زد یا اگر خیلی جای دیگه دنیا زده می شد نشونه باشوری، با فرهنگی و با شخصیت بودن طرف بود اما چون از دهان ایشون خارج شده حسی که به من نوعی میده یه جوری رو احسابم بازی میکنه میخوام بپرم تو آب سرد که از خواب بیدار شم که این توودی که این حرف زدی واقعا ایشون گفتند ممکنه ما از قانون هم ناراضی باشیم اما تمکین ما در مقابل قانون موجب فصل الخطاب شدن قانون میشود اه حالا دیگه قانون فصل خطاب شما فصل خطاب نیستی قانون فصل خطاب آیا الله خمینی چ... چقدر خوب چه حرف درستی زدی ولی نمیشه این جملت تموم بشه و من در به در دنبال یه چیز سفت و سخت نباشم که محکم سرمو بزنم بهش مرد حسابی یعنی چه کسی میتونست این بحث اهمیت قانون مطرح کنه و در این حال هنوز به کلمه آخر جمله نرسیده تو دلت بگی آخه به پدر و مادرت صلوات یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به دیگران یکی نیست بگی آخه اخوی همه یه مشکل این مملکت با تو همینه که همه باید تمکین کنن از قانون که فصل خطاب بشه از جمله خود تو الان مثلا خود قانون رایت میکنه دیگه که صدها نفر افتادن زندان برای انتقاد از حکومتت یا قانون فصل خطاب که نسرین سوتیده باید تولد پنجاه سالگیش در زندان باشه این قانونه که جز چهار نفر از رفقای به گلستانت بقیه همه ردت صلاحیت میشن و هیچ کس لیاقت ریاست جمهوری نداره غیر از اونایی که میگن آقا ما مخلصیم آقای خامنه‌ای و بعد می‌خوای مردم هم خلق کنن که از بین اون چیزایی که تو یه نفر میپسندی بیان یکی رو انتخاب کنن شما خود تو کردی تو قانون اون بالای قانون مسد مسد هم نه اون بالای قانون بعد میگی قانون فصل خطابه بابا خیلی کار درست خیلی چیزی تو قانون فصل خطاب باید باشه درست اما چه قانونی؟ قانونی که توش التزام به ولایت فقیه شرط اول برای کسیه که میخواد رئیس جمهور بشه؟ شما خودت هیچ بند از اون قانون رو بهش پایبند نیستی بعد میشینی میگی من ولی امام زمانم تا اون بیاد و تا اون موقع قانون رایت بشه اونم قانون چه قانونی؟ قانون من؟ سید حرف شما کاملا درسته همه باید به قانون پایبند اصلا آقا همون قانونی که خودت داری میگیر و خودت دور میزنی با اون سیستمی که درست کردی با این وضع اوضاعی که درست کردی حالا صحبت از قانون کردن یه خورده که نه از بیخ و بن بی‌معنیه مثالاشم خودتون نشرحی بزنید دور براتون و براتون می‌تونید فد و فراوون پیدا کنید از این برای بچهای دانشوری که محروم از تحصیل میشن این قانونه قانون میگه علیه حرف زد اینو و چیز کن از تحصیل محروم کن اینا که قانون رو نقص که نقض نکردن که و هرکی عتقده یهو سر از زندون در میاره، از معمورایی که قانون رو نقض میکنن اما به خاطر حمایتی که ازشون میشه راست راست دارن را میرن میگن از کارشونن پشیمون نیستن. این قانونه از اون روزنامه کهانت، صبح تا شب به زمین و آسمون و خلق و خدا تهمت میرمنده ولیشون تیرایی که پرت میکنه همه در جهت مخالف توه برای زدن منتقدای های توئه ککت هم نمیگز و انگار, نه انگار. که تو این مملکت اصلا قانونی هم. داره. سید درسته ملت باید به قانون پایبند باشند ولی چرا خودت به همین قانون خودت پایبند نیستی مرد حسابی حرف ما هم همینه باید قانون فصل خطاب باشه ولی خودمونیم اگه قرار باشه کسی حرف از قانون بزنه آخرین نفری که میتونه بگه قانون فلان و قانون به همان خودت میدونید چرا؟ به خاطر اینکه سالهاست هاست آیه شما این کلمه رو اصلا بیمانی کردی بی کردی بی جسم کردی بیروح کردی بیخاطره کردی بی شخصیت کردی یه جوری که وقتی اسمش میاد همه میفهمن منظور توی وقتی میگن قانون یا... یا رو طرف حالا صبح تا شب بشه میگو قانون قانون رایت کنی قانون فضل قانون دوس که نشون بده یه جورایی تو یه دنیای دیگه سر کنی یا اینقدر به اسارت توهمی که روز به روز مثل یه تار عنکبوت همه ی وجودت رو خونه میکنه خوک کردی که دیگه بین واقعیت و حقیقت و وهم و خیال نمیتونی مرزی بذاری ولی می‌بینی چی اول آخرش بالاخره یه روزی جای آدم‌ها که خودشون رو قانون می‌دونن یا جای قانون می‌شونن قانون حکم بد بکنه و هر آدمی به هر بزرگی باید بره زیر اون قانونه نه اینکه بره بالا اون بالای قانون باید اون موقع است که ما مردم مردم ایران این مرز پرگوهر ما یه ذره رشت کردیم و میتونیم بگیم این جامعه ما داره به یه سمت درست و سازندهی پیش میره ما چشم داریم به اون روزی که اینقدر رشد کنیم و اینقدر جلومون گرفته نشه برای. سازندگی. ما ملت دوست داریم که به قانون پایبند باشیم اما نه این قانون حالا اون موقع کی بیاد چطوری بیاد رو من نمیدونم کاشکی میدونم این بود برنامه این هفته در ساعت 5 اص ملت این برنامه محصولیست از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و کمپین به عنوان حسن ختم برنامه میخواد که شما بدونید دولت آمریکا روز پنج شنبه خورداد علی اصغر میرهجازی مسئول ارشد امور امنیتی و سیاسی در دفتر آیت الله خامنه ای رو به خاطر نقش پشت پرده در سرکوب شهروندان ایرانی به فهرست تحریم ها ایران اضافه کرد تا هفته دیگه و پنج عصر دیگه سرتونه بگیریم بالا این قدم به هم دیگه گیر ندین آخر فیلم همه راست MİGİ NƏ İNO